کرامیان درود بر شما فایل آوایی نهم از کتاب برهان علیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نون فخر با هم آغاز می‌کنیم صفحه 90 هفته هشتم گفتگوی قهرمانان داستان واجب الوجود کجا خدای دین کجا ممن؟ خب بگو ببینم نتایج افکارت درباره برهان علیت چه شد؟ ناباور من از همه آن چه در برهان علیت گفتی دو نتیجه گرفتم. یکی درباره صفات واجب الوجود و دیگری درباره معال مومن مشتاقم بشنوم. ناباور باید بگویم اگر قرار باشد همانطور که گفتی علت العلل خصوصیات یک پریده را نداشته باشد تا نیاز به علت دیگری پیدا نکند و خودش علت اول و بی نیاز از خالق باشد لازم است که زمان نداشته باشد و هیچگونه تغییر و تغییر در او راه نیابد این یعنی اینکه او نباید فکر کند چون در فرایند فکر کردن نفس فکر کننده ابتدا چیزی را نمی داند و سپس با تجزیه و تحلیل دانسته هایش آنچه نمی دانسته برایش به دانسته تبدیل می شود. نفس شماره یک نفسی است که نمی داند ولی نفس شماره دو نفسی است که می داند. این یعنی تغییر و تغییر نفس. این یعنی نو به نو شدن نفس و هستی فکر کننده. او نمیتواند ترراهی کند. چون ترراه ابتدا از آنچه خلق می کند خبر ندارد و سپس با تفکر و بررسی طرحش کامل می شود و آنگاه از طرحی که از آن خبر نداشت خبردار می شود. اصولا او نمیتواند عملی را انجام دهد چون ابتدا آن را انجام نداده است یعنی او ابتدا هستیی است که عملی را انجام نداده و سپس به هستیی تبدیل می شود که آن را انجام داده است. مامن صبر کن با این آخری اصلا موافق نیستم. ما نمی دانیم یک هستی بدون زمان چه خصوصیاتی دارد و آیا واقعا می تواند عملی را انجام دهد یا نه؟ این ما هستیم که او را به دو حالت قبل و بعد از انجام عمل تقسیم میکنیم چرا که ما نمیتوانیم چیزی را بدون زمانمند بودن تصور کنیم. این ناتوانی ذهن ماست اینکه چنین ذاتی نباید تغییر کند درست است اما اینکه یک ذات بدون زمان اعمالش را مانند ما در زمان انجام میدهد و میشود او را به ذات قبل از انجام عمل و ذات بعد از انجام عمل تقسیم کرد تنها تصور اجتناب ناپذیر ما نسبت نوست. این ما هستیم که نمیتوانیم جز این تصور کنیم. تنها باید به همین بسنده کنیم که او غیر ممکن است متغیر و زمانمند باشد. ناباور ممکن است تنها در این مورد آخری حق تو باشد. اما چند خصوصیت دیگر هم هست که صاحب آن باید زمانمند باشد و یا بهتر بگویم باید تغییر پذیر باشد. غضبناک شدن و یا راضی و ناراضی شدن بدون شک یعنی تغییر کردن. ذاتی که پیش از عمل ما قذبناک نیست و پس از عمل ما غضبناک می شود نمی واجب الوجود باشد. مومن درست است اما در نظر داشته باش که آنچه در دین اسلام در مورد رازی یا ناراضی شدن خدا گفته شده است قابل تفسیر است ناباور حتم می‌زدم که چنین جوابی بدهی و باید بگویم این جواب به درد من نمی‌خورد از این گذشته نمی‌توانم بفهمم که چرا باید فرض کنیم تنها یک واجب الوجود وجود دارد سلسله‌های علت و زیاد است و شاید حتی جهانهای متعدد و مستقلی وجود داشته باشند و بشود برای هر سلسله علت و معلول و هر جهان واجب الوجود مستقلی در نظر گرفت مومن فکر نمیکنی که در آن صورت باید بینشان اختلاف پدید آید ناباور آنها که تغییر نمیکنند پس همیشه یا از دیگری بیخبرند و یا از دیگری و اعمالش باخبرند و کاری با او ندارند چرا که اصلا نمیتوانند به هم دیگر کاری داشته باشند و تأثیری روی هم بگذارند و یکدیگر را رو خشمگین کنند و سپس صلح کنند و یا از هم ناراضی شوند و سپس راضی شوند گویا این بار این تو هستی که فراموش کرده ای آنها نه زمانمند هستند و نه تغییر می چندین واجب الوجود میتوانند وجود داشته باشند بدون اینکه جای یکدیگر را تنگ کنند چرا که اصلا ممکن نیست آنکه خودش مکان را خرق می کند جایی باشد تا مزاحم دیگری شود همچنین گفتی که واجب الوجود حدود ندارد بنابراین معنی هم ندارد که چند واجب الوجود مزاحم حدود یکدیگر شوند در ذهن تو از علم مطلق و بینقص این ذات واجب الوجود سخن گفتی این را که واجب الوجود نباید به علمش چیزی اضافه شود قبول کنم چون این ملازم تغییر است. اما چرا باید فکر کنیم که اصلا علم دارد یا ندارد؟ عالم بودن او را از کجا فهمیدهی؟ ای؟ مومد آیا با نگاهی به این جهان نمی پی برد که او از آنچه انجام میدهد خبر دارد؟ نابابر علم تصوراتی است که از جهان خارج در ذهن ما شکل می گیرد. این ما هستیم که بعضی کارها را نمی کنیم مگر اینکه بدانیم چه می کنیم و ترهی برای اون داشته باشیم برچه اساس فکر می که واجب الوجود هیچ شباهتی از این نظر به ما دارد چرا فکر می کنی؟ آن باید بداند آنچه خلق می کند اصلا چیست و یا باید بداند آنچه خلق می کند قرار است به چه چیز تبدیل شود ظاهرا نتیجهگیری تو برای اینکه آن علم دارد بر اساس تشبیه این ذات به انسان است انسانی که یک پدیده است و ذهنش هم یک پدیده است و علمش هم پدیده است برای همین هم یک سره با زمیر او به آن اشاره می کنید و گاهی مرا هم از این نظر به اشتباه میاندازید اصلا ما هرگز علمی را که پدیده نباشد ندیده ایم و توانیم تصور کنیم من نمیتوانم از این برهان علم واجب الوجود را نتیجه بگیرم مگر اینکه آن را به انسانی که سر تاپا پدیده است تشبیه کنم و این خلاف نتیجه برهان است قرار است آن پدیده نباشد لذا باید درباره عالم بودن آن سکوت کرد مومن، یعنی تو فکر میکنی که او نمیداند چه میکند و همچون یک شیء بیجان و بیدانش جهان را کاملا بدون هدف خلق کرده؟ ناباور من میگویم از برهان علیت نمیتوان به هیچ نتیجهای درباره علم وجود دست یابت اما می شود گفت که علمی از جنس تصوراتی که ما در ذهن داریم و بر آنها نام علم می‌نهیم برای آن غیر ممکن است اینکه علمش دست خوش تغییر کاهش و یا افزایش بشود نیز غیر ممکن است مؤمن بر اساس قرانه علیت حداقل توانیم بگوییم که اگر علم داشته باشد علمش حدودی ندارد به علاوه اگر علم او کامل و بینقص نباشد لازم می شود که اگر رویدادی رخ دهد و او آن را ببیند به دانشش اضافه شود و چیزی را بداند که قبلا نمیدانسته این یعنی او تغییر کند و هستی جدیدی با دانش بیشتر بیابد. این هستی جدید چون جدید است پس یک پدیده است و نیازمند علت به این ترتیب او دیگر واجب الوجود نیست و خودش هر لحظه شبیه مثال خودکار اصلی جدیدی مییابد و هر لسه نیازمند علت است. ناباور تو الان گفتی اگر رویدادی رخ دهد و او آن را ببیند. راستی شنوا و بینا و سمیع و بسیر بودن خدا که از صفات گفته شده در مورد اوست با آنچه از یک واجب الوجود انتظار داریم هم خان نیست. آنکه بینا و شنواست تأثیری از آنچه رویداد است می گیرند. گیرن به علمش اضافه نشود. به هر حال هم که شاهد رویداد هاست به این معی است که رویدادها بر او تأثیری میگذارند وگرنه گرنه دانا بودن به آنچه رخ داده است کافی بود و اینکه بگوییم او شنوا و بیناست لازم نبود. مؤمن بینا و شنوا بودن او مانند بینا و شنوا بودن ما انسان ها نیست. این ما هستیم که باید چشم و گوشمان توسط نور اشیاء و یا ارتعاشات هوا تحت تاثیر قرار گیرد تا ببینیم و بشنویم. او اینگونه نیست. ناباور اینجا اصلا صحبت از کیفیت دیدن و شنیدن نیست. اگر قرار بود خدایی که دین اسلام معرفی می کند مطابق با همان واجب الوجودی که برهان علیت ثابت می کند قرآن و یا اولیای دین تنها باید میگفتند که خدا دانا به امور است البته همانطور که گفتم برهان علیت دانایی خدا را ثابت نمی کند بلکه حتی شکل انسانی آن را هم نفی میکنند. اما صفات شنوا و بینا بودن را با هر کیفیتی که باشد رد می کند. شنوا و بینا بودن فقط به معنی تأثیر پذیری از یک رویداد پاورقی ارستو که برهان علت اول را بنا نهاد قائل بود به اینکه علت اول نمیتواند با جهان تعاملی داشته باشد و از آنچه در آن میگذرد بیخبر است از دید ارستو علت اول این عالم را نمیشناسد و هیچ طرح الهی در این عالم انجام نگرفته است تاریخ فلسفه، فردریک اپرستون چاپ ششم جلد اول ترجمه سید جلالدین مشتبوی صفحه 364 ادامه مطلب ممکن است شنیدن یا دیدن یک رویداد اطلاعات ما را نسبت به آن افزایش دهد و ممکن هم هست که ما از قبل از وقوع رویداد آگاه باشیم و اطلاعاتمان افزایش نیابد در هر دو حالت عمل شنیدن و دیدن به معنی تاثیرپذیری از رویداد است اگر خدا اولا هیچ تأثیری از هیچ رویدادی نپذیرد و ثانیان صرفا از همه رویدادها ها با خبر باشد ذکر صفات بینا و شنوا بودن نسبت به رویدادها ها بیمعنی و اشتباه است. اینجا صحبت از کیفیت شنوایی و یا بینایی نیست. اینجا صحبت از نفس این دو فعل است. این دو فعل جز از طریق تعثر از رویداد اصل نمی و هیچ ارتباطی با افضایش یا عدم افضایش اطلاعات ندارند. شاید بشود فرض کنیم واجب الوجود بتواند همه چیز را بداند و لذا تغییری نکنند. اما نمی به هیچ شکلی شنوا و بینا باشد. من وقتی بیشتر فکر می کنم صفات زیادی را در مورد خدای اسلام می که به هیچ شکلی نمیتواند به یک واجب الوجوده غیر قابل تغییر نسبت داده شد. اینکه کسی به درگاه خدا تضرع و ناله کند تا لطف و بخشش او را به آورد بسیار توصیه شده است. مگر می شود که کسی بداند خدایی که به مردم معرفی نکند غیر قابل تغییر است آنگاه به مردم بگوید که با تذر رو او را بر سر رحم آورند. از آن بدتر بگوید که او سریع و است. و به سرعت راضی می شود این دیگر چیزی جز تغییر همراه با زمانمندی نیست مؤمن اینکه مردم از او بخواهند و او انجام دهد هیچ تضادی با بی تغییر بودن او ندارد همانطور که خدا برای امور جهان قوانین فیزیک را دارد شاید اجابت خاصه مردم پس از دعا و تضرع نیست یکی از قوانین او باشد ناباور. و کنیم که چنین قانونی گذاشته باشد. حالا من با عقلم و به کمک برهان الیت به تغییر ناپذیری آن واجب الوجود پی میبرم. حتی ممکن است توسط همان پیامبر به حقیقت بی تغییر بودن آن پی ببرم. درست است؟ مومن. بله درست است. ناباور حال همان پیامبری که این حقیقت عقلانی را به من میگوید این را هم میگوید که اگر از آن چیزی بخواهم و دعا کنم، اجابت میکنه. از نظر تو این اشکالی ندارد؟ مومن، نه هیچ اشکالی ندارد. ناباور حالا همان پیامبر به من میگوید که باید تذرع و زاری کنم تا آن واجب الوجود نیاز مرا براورده سازد. این دیگر اشکال دارم، درست است مومن، چه اشکالی دارد شاید جهان را بگونهای خلق کرده باشد که فرمول اجابت دعا هم این گونه باشد ناباور تظرع و زاری من نیازمندیم را افزایش نمیده. تظرع و زاری برای تحت تاثیر قرار دادن شخصی است که از او تقاضایی داریم عمل تضرع و زاری ما در نفس خود هیچ چیزی نیست جز فعلی تأثیر گذار بر مخاطب ما که قرار است در او تغییر ایجاد کند و مثلا دل او را به رحم آورد شاید ما نیازمان بسیار باشد ای که ما را به گریه وادارد در این حالت گریه ما محصول نیاز ماست در این حالت لزومی ندارد که به ما بگویند به دلیل نیاز و حاجتی که داری گریه کن چرا که خود نیاز و حاجت گریه ما را در می آورد. اما وقتی گفته شود آنگاه که از خدا چیزی می‌خواهی گریه هم بکن ولو اینکه خودت گریت نیاید معنایش چیزی نیست جز اینکه خدا همچون یک انسان است و گریه و زاری ما او را به رحم میآورد. مؤمن خضوع و خشوع ما روی خود ما اثر میگذارد و این تغییر ما و در پیش اجابت دعا میتواند همان قانون و فرمولی باشد که خدا گذاشته است یعنی با گریه دچار خضوع میشویم و پس از خضوع ما دعا قابلیت اجابت مییابد ناباور خضوع و خشوع شاید چنین کند اما گریه و زاری کاملا متفاوت است گریه گزاری خضوع و خشوع نمی آورد چنانکه گریه گزاری کسی که تکدیگری میکند به این معنی نیست که او قلبا در برابر ما خازه است و خودش را حقیر میبیند. از طرفی خضوع و خشوع در برابر یک خدا که میدانی به هیچ وجه تحت تأثیر گریه ما قرار نمیگیرد احتمالا باعث گریه کردن ما نمیشود اگر تو بدانی آنکه که در برابرش دعا می کنی به هیچ وجه تحت تاثیر گریه و تو قرار نمیگیرد و اصولا خصوصیات انسانی در موردش بیمعنی و غیر ممکن است حتی اگر هم نسبت به آن خضوع داشته باشی به این از گریه درآید، و اگر هم گریه درآید، از پیامبر آن واجب الوجود انتظار می رود که به امثال تو تذکر دهد گریه ایتان تأثیری در آن واجب وجود ندارد نه اینکه برعکس عکس عمل کند. وقتی تو میدانی که آن از تمام نیازهای تو با خبر است و گفتن و نگفتن نیازهایت علم آن را نسبت به نیازهایی که داری افزایش نمیدهد تو تنها زمانی نیازهایت را برایش میگویی که یا برایش شخصیت انسان بار باشی و یا فرستادهش گفته باشد او با انجام این فرمول آنچه را میخواهی به تو میدهد و اگر او چنین فرمولی را نگفته بود احتمالا حتی نیازهایت را هم برایش نمیگفتی زیرا داشتی که خودش بهتر از تو میداند حال اگر آن رسول بگوید علا رقم آنکه گریه هیچ تأثیری بر خدا نمیگذارد موقع دعا گریه هم بکن زیرا فرمول اجابت دعا همین است. تو خواهی گفت این چه مسخره بازی است که این واجب الوجود در چرا اصرار دارد انسانها آن را بگونه ای تصور کنند که آنگونه نیست؟ گفتی که واجب الوجود حدود و خصوصیات و کیفیات معینی که از او یک ممکن الوجود بسازد ندارد. آیا مهربان بودن، منتقم بودن، رعوف بودن، توبه پذیر بودن، صبور بودن، عادل بودن و شکور بودن؟ همهی حاکی از داشتن خصوصیات خاص و محدودیت و ممکنن وجود بودن نیست؟ آنکه مهربان است، خصوصیاتی دارد که به او اجازه نمیدهد نامهربان باشد. آن که منتقم است، خصوصیاتی دارد که به او اجازه نمیدهد از کنار بعضی افعال بدون عکس عمل عبور کند آنکه رعوف است خصوصیاتی دارد که ملزمش می کند دلسوز باشد آنکه توبه پذیر است خصوصیاتی دارد که موجب شود نسبت به توبه کنندگان سختگیر نباشد آنکه صبور است هم خصوصیات محدود کننده دارد و هم آشکارا زمانمند است آنکه عادل است نمی نمی‌تواند ظلم کند آنکه شکور است خصوصیاتش اجازه نمیدهد قدردانی نکند و بی تفاوت بگذرد تمام این صفات نشان دهنده داشتن محدودیت و خصوصیات مشخص و از آن بدتر نشان دهنده تاثیرپذیری او و واکنش داشتن او نسبت به پدیده ها و مخلوقاتش است. مومن میتوان گفت اینطور نیست که او محدود به خصوصیاتی باشد که مجبورش کند این صفات را داشته باشد بلکه به انتخاب خودش این صفات را برای خودش برگزیده و تصمیم گرفته چنین باشد که هست ناباور از زمانمند بودن عمل انتخاب که بگذاریم انتخاب یعنی اینکه چیزی را به دلیلی به چیز دیگری ترجیح دهیم یعنی اینکه ابتدا ندانیم از موارد پیش رو کدام یک را میخواهیم سپس بفهمیم کدام یک را میخواهیم این عمل مستلزم دو چیز است اولا تغییرپذیری و نو به نو شدن هستی انتخاب کننده ثنا داشتن خصوصیات و حدودی که باعث می شوند ساعت انتخاب کننده یکی از موارد انتخابی را متناسب تر با این خصوصیات و حدود تشخیص دهد و دیگر موارد را متناسب نیابد ببین مؤمن خدای معرفی شده در اسلام و ادیان دیگر است با خصوصیات انسانی است دارای شخصیت خدایی است که همچون انسان تغییر میکند و زمانمند است و احساسات دارد و خصوصیات و کیفیات معین و محدود کننده دارد و هیچ شباهتی به واجب الوجودی که محصول برهان علیت هست ندارد این خدای انسانگونه ایتیان اگرچه تفاوت هایی با انسان دارد اما با واجب الوجود اقلانی هم فاصله ای دارد برهان علیت واجب الوجود را ثابت می کند و بلا فاصله وجود خدای ادیان را رد می کند و می گوید جهان اگر هم به فرض یکی باشد مسلما آن یکی خدای ادیان توحیدی نیست در واقع آنچه تو ثابت کردی این بود که دین اسلام و ادیان مانند آن ساخته و پرداخته ذهن انسانهایی هستند که به وجود یک خدا برای جهان باور داشتند اما آن را تا حدی که قابل بخشش و چشم پوشی نیست شبیه انسان و پدیدوار می‌دانستند اگر واجب الوجودی که تو ثابت کردی واقعا پیامبری می‌فرستاد هرگز از او نمی‌خواست که به مردم بگوید که آن شنوا و بیناست، و یا بگوید که به درگاه آن تذرع کنند و یا بسیاری صفات انسانگونه را برای آن برشمارد و از همه بدتر آن را با زمیر او و به عنوان یک هستی متشخص پدیدوار زمانمند تغییر پذیر خطاب کنند زمانمند و تغییر پذیر بودند و داشتن حدود و کیفیات شاخصه های بارز و جدا نشدنی متشخص بودن است. شاید بعضی از صفاتی که در اسلام برای خدا ذکر شده به نهوی قابل تفسیر باشد تا با صفات واجب الوجود در تصاد نیفتد. اما بعضی از این صفات به هیچ وش قابل تفسیر و تعبیل نیستند و لازمهشان این است که خدا تغییر پذیر باشد و این خلاف برهان علیت است برهان علیت برهان اثبات خدای ادیان توحیدی نیست بلکه برهان رد خدای ادیان توحیدی است به علاوه اگر واجب الوجود برهان علیت پیامبری میفرستاد هرگز به او گفت که روز جزایی وجود دارد مؤمن این دیگر چرا ناباور هفته بعد خواهم گفت مومن به هر حال من فکر می کنم که توصیف خدا با صفاتی که در اسلام و قرآن آمده می تواند قابل توجیه باشد زن این که در اسلام تأکید زیادی بر منزده بودن خدا از هر عیب و نقص و نیز عدم تشابهش به پدیده ها شده است چنان که گفته شده لی سکم اثلحی شعید یعنی چیزی مانند او نیست. ناباور میدانم که اینطور می میکنی و میدانم که اگر آن توجیهات را پیدا نکنی باز هم اسلام را رد نخواهی کرد اما تو با مسامحه این صفات را میپذیری و مسامحه حد و حصر ندارد اگر بنابر مسامحه باشد هر توصیف دیگری هم میشود پذیرفت و استفاده از عقل و برهان برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعای یک پیامبر کاری عوض خواهد بود. با این روال اگر امروز هم شخصی ادعای پیامبری کند و حتی بگوید خدایش دست و پا و زبان دارد و در کنارش بگوید هیچ چیز مانند خدای او نیست تو میتوانی با مسامهه همه اینها را در کنار هم بپذیری و این صفات او را تفسیر و تعویل کنی و بیشتر تأکید خود را بر روی همان جمله چیزی مانند او نیست بگذاری و نتایج فلسفی برهان علیت را با ادعاهای این پیامبر جدید نیز منطبق بدانی اما واقعیت این است که اگر امروز کسی این چنین ادعای پیامبری کند تو فورا این روال همیشه گیت را کنار می‌گذاری و تمام همه خود را میگذاری بر اینکه ای به گفته های آن پیامبر نوظهور را بگیری و بر عدم تطابق حرف های او با یافته‌های عقلیت تأکید کنی چرا که عاقلانه می‌یاوی اگر او حتی یک حرف غلط زده باشد تو هیچ مصامحه‌ای را در آن مورد موجه نداری تو به درستی می‌دانی آنکه ادعای پیامبری می‌کند ممکن است انسانی باشد که راست نمیگوید و تو باید به دنبال خطاهای او باشی نه حرفهای درستش چرا که هر کسی حرفهای درست هم میزند یک پیامبر دروغین ممکن است هم حرفهای درست و هم حرفهای ظاهرا غلط که با مسامحه قابل تعویل و توجیح باشد بزند اگر فرض کنیم که یک پیامبر واقعی هم ممکن باشد هم حرفهای درست و هم حرفای ظاهرا غلط که با مصامح قابل تعویل و توجیه باشد بزند پس ما خود را از جهت توانایی نقد و ارزیابی حقانیت یک مدعی پیامبری خلع سلاح کرده ایم و توانیم بین این دو نفر تمایزی پیدا کنیم ما دیگر هیچ راهی برای اینکه کشف کنیم کدام مدعی پیامبری راست می گوید و کدام راست نمیگوید نداریم آنگاه دیگر همه بحث های اقلانی بیفایده است. مومن مردم نمیتوانند با خدایی که هیچ خصلت انسانی به اون نسبت داده نشود ارتباط برقرار کنند. این باعث میشود یک جنبه مهمی از دین که همانا ایجاد احساس آرامش در مؤمنین است از دست برود. ناباور. اولین ادعای پیامبران این نیست که آمدهاند تا احساس آرامش ایجاد کنند بلکه این است که آمدهاند تا حقیقت را به مردم بگویند تا مردم درست و غلط را تشخیص دهند و آنچه نمیتوانند به تنهایی بفهمند به کمک علم الهی که در اختیار پیامبران قرار گرفته بفهمند و هدایت شوند مدعیان پیامبری هر آنچه را که به مردم میگویند تحت عنوان حقیقت میگویند، نه تحت عنوان سخنان آرامش پخش و یا تحت عنوان دلداری با توجه به اینکه هر انسانی که رد پدیده ها را دنبال کند به واجب الوجودی می رسد که غیر قابل تغییر است و صفات پدیده ها را ندارد می توان گفت دانش به این صفات واجب الوجود کاملا در تصرص هر انسانی هست و است هر کسی به مفهوم وجود و عدم و نیز مفهوم علت و معلول بیاندیشد تا بلا فاصله به وجود واجب الوجود و بعضی صفاتی که نباید داشته باشد واقف گردد بنابراین این یکی از ابزارهای ما برای راسی آزمایی مدعیان پیانبری است. اگر قرار است اثبات واجب الوجود از طریق برهان علیت، وسیله شود برای اثبات درستی ادعای یک مدعی پیامبری که میگوید خدا وجود دارد پس صفات آن واجب الوجود از طریق این برهان نیز باید به همان شکل وسیله شود برای اثبات نادرستی ادعای آن مدعی پیامبری آنگاه که صفاتی برای خدایش برمیشمارد که با نتایج برهان علیت در تضاد است چنانچه ما هر صفت انسانی را که آن مدعی پیامبری به خدایش نسبت میدهد، قابل تعویل بدانیم و از کنار آن با مسامحه عبور کنیم دیگر با چه ابزار اقلانی متوجه شویم آن مدعی خدای ساخته و پرداخته ذهن خودش را به عنوان باجب و وجود به ما می‌فروشد یا نه اگر هر مدعی پیامبری در جایی گفته باشد خدایش مانند هیچ چیز دیگری نیست و در جاهای دیگر گفته باشد خدایش میبیند، میشنبد، خشبی میشود، رازی میشود و این قبیل تغییر و تغییرها را میپذیرد آیا میتوان گفت که صرفا به واسطه همان یک جمله لیسک مثل هی شید او میدانست چه میگوید و سخنانش قابل تعبیل است؟ اکنون که من و تو به این نتیجه رسیده ایم که واجب الوجود به مانند هیچ پدیده ای نمیتواند باشد آیا میتوانیم در پاسخ به هر که بپرسد آیا واجب الوجود خشمگین میشود بگوییم بله؟ اگر درک ما از مفهوم لیسک مثل هیشه ای همان باشد که ما در مورد واجب الوجود برهان الیت برداشت کردیم دیگر به من و تو اجازه نمیدهد به دیگران بگوییم او میشنود میبیند به سرعت رازی میشود یا به کندی رازی میشود. آیا میتوان گفت که آن مدعی پیامبری فرستاده رستاده واجب الوجود بوده اما بسیار کمتر از من و تو آن واجب الوجود را میشناخته. به هر حال، حالا که به وسیله برهان علیت به این معنا از باجبل وجود رسیدم دیگر نمیتوانم نتیجه اش را کنار بگذارم و بگویم نیمی از نتایج برهان را قبول میکنم و نیمی دیگر را نادیده میگیرم مؤمن آیا نمیخواهی صبر کنی تا شاید درباره چگونگی تعویل و تفسیر این گونه به جوابی برسی بلکه برایت روشن شود این گونه صفات لزوماً به معنی قابل تغییر بودن خدای اسلام و پدیدوار بودن او نیست آیا فکر می‌کنی معقول است که به این زودی نتیجه نهایی را اعلام کنی شاید این راز چند روز یا چند ماه دیگر برایت گشوده شود ناباور شاید همین شود که تو می گویی ولی تا آن روز عقلا باید به صحت ادعای پیامبر اسلام در مورد اینکه او واقعا فرستاده ی واجب الوجود است بی باشم تو هم تا زمانی که این به قول تو راز برایت گشوده شود لازم است که تدریس درس دینی را به بچه ها متوقف کنیم و آن دینی را که تا اینجا یک کار دلایل اقلیت آن را دین فرستاده شده از سوی واجب الوجود نمیداند به عنوان حقایق مسلم و حتمی و مقدس در سر بچه ها فرو نکن. یادت باشد که تا اینجای بحث ما برهان علیت نسبت به بسیاری صفات خدای دین اسلام و ادیان توحیدی دیگر سکوت و بیتفاوتی نشان نداده است تا تو بتوانی ایمانت را به همه آن صفات نگهداری بلکه در مورد بعضی از این صفات مانند یگانه بودن و بی نیاز بودن خدا با شروطی بی است و نه آنها را رد کرده و نه اثبات می کنه. اما در مورد بعضی صفات او موضع انکار دارد و آنها را غیر ممکنه عقلی می داند. بنابراین بی تفاوت از کنار این نتایج و ادامه تدریس درس دینی صحیح نیست. تو که فاصله پس از اثبات واجب الوجود از من انتظار داشتی به خدای دین اسلام ایمان آورم، آیا خودت حاضری با انایت به نتایج همان برهان دست از ایمانت به خدای متشخص پدید وارد دین اسلام بکشی و حتی اقل فعلاً آن را به حالت معلق در آوریم؟ مومن، البته راههای دیگری هم برای ارزیابی صحت ادعای یک پیامر داریم، ناباور. فعلا که راه عقل را میپیماییم و اگر ادعای مدعی پیامبری خلاف عقل باشد، عجیب خواهد بود که راه های دیگر اثبات ادعای او موفق باشند. مؤمن چند ثانیه سکوت کرد و سپس گفت، کنشکاف شدم بدانم هفته بعد چگونه برهان علیت را به بهشت و جهنم رفت می دهیم؟ گرامیان همینجا در صفحه 102 فایل آوایی نهم از کتاب برهان علیت پایان پیدا میکنه تا درودی دیگر بدرود